خب یه قاعده مونده بود از از بله من ممدوده پس قاعده 156 اُم رو که توضیح دادیم در قبل در علف ممدوده که آخرش حمزه هست ما سه حالت داریم یا حمزه اصلی هست ما اصل کلمه از حروف اصلی هست رفعه چون اصل کلمه رفعه هست ما بر میگردیم به چیش به اصلش به ریشهش برای این که تشخیص بدیم این همزه جز اصل کلمه هست یا نه رفعه لاملفرش چی هست همزه هست خب بله پس رفعه همزهش اصلی هست زمانی که مصنعش کردیم همزه سر جاش باقی میبینه میشه رفعه ابتداء بدعه همزه اصلی هست. میشه میشه آن. اگر همزه مال محنس بود مانند زرقا صحراء اینجا در مسنلا همزه تبدیل به چی میشه تبدیل به میشه پس اگر همزه اصلی بود سر جاش باقی میمونه در مسنلا اگر همزه نشانی محنس بود تبدیل به چی میشه تبدیل به باو میشه و اگر در غیر این دو صورت یعنی حمزه نه نشانی محنس بود و نه اصلی بود مانند بنا اصلش بنایه است بنا بنایان میتونی بناان بله در این حالت که حمزه نه اصلی هست و نه علامت محنسه در این حالت دو حالت جایزه میتونیم بگیم بناان میتونیم بگیم چه بناوان همین چیزو میگه میگه الممدود به زیادت الف او یا و نون در خب اینش که واضحه مصنمش ممدود با اضافه کردن الف و نون یا یا و نون در آخرش بسگید اعرابش داره و تبقى حمزته علی حالها ان اصلیتا اصلیه میگه باقی ممنون حمزه بر حالت خودش اگر حمزه اصلی بود و توق واو ان للتعنیفه و حمزه تبدیل به میشه اگر مال نش علامات مؤنث بود زرقا که در مسننا میشه زرقاوان و یه جوزو الوجهان فی ما عدا ذالک و دو حالت جائز هست برای حمزه در غیر این دو صورت یعنی اگر حمزه اصلی نبود و مال مو موننس نبود حمزه رو میتونیم سر جاش باقی بگذارین و میتونیم تبدیل بوابش کنیم. مانند سماء بیتونیم بگین سماان یا سماوان اما قایده 157 این صحه جمع الاسم الممدود جمع مذكر صالما او جمع مؤنث صالما او ملا في الجمع معاملته في التثنيه بله دقتی داشته باشید میگه اگر صحیح باشه جمع اسم ممدود جمع مذکر سالم یعنی از اون کلماتی باشه که بتوان آن رو جمع مذکر سالم برد من قبلا ارز کردم که هر کلمه رو نمیشه به جمع مذکر سالم برد مثلاً کتاب میشه به جمع مذکر سالم برد نمیشه ببینید سما رو نمیشه به جمع مذکر سالم برد ولی میشه به جمع معندس سالم برد خوب حالا میگه انصح صح حجم الاسم الممدودی جمع مذكر سالم اگر صحیح بود که جمع اسم ممدود رو جمع مذکر سالم ببندیم او جمع مؤنث سالم یا جمع مؤنث سالمش ببندیم ها چون هر ای رو نمیشه جمع مذکر سالم بس مثلا زید رو نمیشه جمع مؤنث سالم برد میگه اگر کلمه اسم ممدودی رو درست بود که ببریم به جنس مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم اون موقع همون رفتاری رو که برای تسمیه کردنش انجام میدادیم برای جنبسنش انجام میدیم او میگه معامله میشه بایش با او فل جمعی در جنبسن معاملته فی التسمیه همون معامله ای رو که در تسمیه با اون داشتیم یعنی همزه رو حمزه رو در جمع مذکر سالم اگر اصلی بود سر جاش میگذاریم اگر حمزه مال محنس بود تبدیل به وارش میکنیم اگر در غیر این صورت همون معامله رو باش برخورد می‌کنیم. مانند ده سماه که جمع محنسش میشه چی؟ سماوات, سماوات. و میتونیم بگیم سماعات تو هر تا حالت در از دیگه جایز بودن؟ متوجه شده دارم؟ بله در جمع موننس صحرا هم چی میدیم؟ سهراوات سهراوات اصلا همون برخوردی رو که در تحصیحش داشتیم دقیقا همونو در جمع مذکر سالم جمع موننس سالمش حمراء میشه حمروان چه فرطیم کنه؟ چی میگم؟ حمراوات اینو که نمی... حمرا رو نمیشه جمع مذاکر سالم بس فقط جمع مؤنسش میشه حمراوات چرا تون حمزهی که در حمراه هست علامت تانیسه ما گفتیم در مسننه حمزه تانیس تبدیل به چی میشد تبدیل به واب میشد مانند زرقا زرقاوان زرقاوات حمراه حمراوان حمراوات اگر یه ای باشم مثلا حمرایات نه اون چیز دیگه است این بحث قاتل. دست قبلی نکن خب پس تا اینجا قواعد قواعد مفعول و منقوص ممدود رو مفصل خوندیم گرچه قبلاها تعریف اینا رو خونده بودیم ولی اینجا زمانی که جنب ببندیم یا تصمیه کنیم آیا در اسم منقوص در مصنع و جمع یا ثابت یا میمونه در اسم منقوس و در اسم مقصور آیه همونجوری باقی میمونه و در اسم ممدود آی حمزی که در آخر اومده ثابت میمونه یا در جمع و مصنع تغییر میکنه که تمام اینا رو مفصل چکار کرده بود؟ شرح داده بود